کتاب داستانها و افسانه‌های های مردم مالزی نویسنده زکری آید نهیتام مترجم گرامی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده حمید رزا باقری سلام میکنم به شنونده های کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه با کتابی از افسانه های مردم مالزی با شما هستم قبل از اینکه این داستان رو بخونم لازم میدونم که این نکته رو خدمتتون ارز کنم و اونم اینکه اگه اسامی شخصیت ها و مکان های اشتباه توی این داستان گفته شد پیشا پیش از شما عذر میخوام سری پاهانگ روزی روزگاری سوسمار بزرگ سفید رنگی توی رودخونه تاسک چینی زندگی می کرد باعث افتخار اون بود که مردم اون رو سریپا هانگ، عالی مقام می‌نامیدند. روزی به طور تصادفی درباره قدرت حیولای بزرگ سیاهی شنید که اون رو سری کامبوجا یا کامبوجای عالی مقام می‌نامیدند. فکر کرد چطور جرعت کرده لقم منو به خودش بده باید با اون بجنگم و لقبم را از اون پس بگیرم به همین دلیل پاهانگ در یک روز خوب به رودخونه پاهانگ و از اونجا به طرف پایین رودخونه به کوالا پاهانگ رفت در اونجا خودش رو به شکل پیرمردی در آورد که ظرفی از برگهای نخ داشت که در اون پر از چیزهایی شبیه به زرچوبه بود در کوآلاپاهانگ شنید که قایقی به پیلوآور میره پیش قایق اونا رفت و گفت خواهش میکنم منو با خودتون به پیولو آور ببرید ممنونتون میشم اما قایقونا به خواهش پیرمرد توجهی نکردند اما همون موقع سکاندار قایق اومد و گفت چون پیرمرد ظرفی همراه خودش داره اشکال نداره اونو با خودمون میبریم چون اگه مشکلی پیش بیاد و با هوای طوفانی مواجه بشیم اون میتونه با ظرفش آب داخل قایق رو خالی کنه بلاخره قایق اونا اجازه دادن پیرمرد سوار قایق بشه صبح روز بعد همراه با طلوع آفتاب قایق به طرف آور حرکت کرد و پیرمرد و ظرفش رو هم با خودش برد قایق دا نیم روز به آرامی حرکت کرد. همین موقع پیرمرد از سکاندار خواست که آرومتر حرکت کنه. حرکت قایق که شد پیرمرد گفت این ظرف رو نگه دار. باید قایق رو ترک کند این رو گفت و به آب پرید. یکی گفت چرا قبل از پایین سفر اینجا رو ترک کرد؟ دیگری شگفت زده گفت نگاه کنید چه منظره عجیبی. باور کردنی نیست؟ توی دریا سری پاهانگ به شکل اولیاش برگشت و به طرف جنوب به جایی نزدیک سواحل جور رفت قایق رونا ما تو مبود گفتن چهی چیز عجیبی یکی از مردان در حالی که به ذرف خیره شده بود گفت: "هی این چیه؟ نمیتونم باور کنم به جایی زرچوب تلاست سکاندار گفت اون یه موجود عادی نبود. چیزی نگذشت که پاهان به جنوب شرقی سیدلی کچیل رسید. اونجا با صدای بلند گفت سری کامبوجا حریفت تو اینجاست بیا با من بجنگ. دو عالی مقام دو سری در یک جا نمیتونن باشن. امروز باید تکلیفمون رو روشن کنیم که کی عالی مقام واقعیه. سری کامبوجا صحبت از مبارزه رو کشنی سر از آب بیرون آورد. و دو هیولا به سختی با یک دیگه جنگیدند آسمان ابری شد رد و برق زد و هوا کمی تاریک شد با اینکه پاهانگ زخمی شده بود ولی کامبوجا به خاطر تاریک شدن هوا دست از جنگ کشید پاهانگ فکر کرد وقت با من یاره بهتره تا فرصت هست از اینجا فرار کنم وگرنه اون منو میکشه و من نمیخوام به دست اون بمیرم بعد پاهانگ آروم به سوی دریای آزاد و از دریا به پیلاور رفت اونجا یه بار دیگه مردمی رو دید که میخواستن با پاهانگ برن اون به قایقرونی گفت آقا خواهش میکنم منو با خودتون به کوالا پاهانگ ببرید همه گفتن نه نه, نه نمیبینی جا ندارین قایقرون شروع به حرکت کردن ولی هرچی سعی کردن قایق از جاش تکون نخورد قایقرون گفت گوش کن ور. تو در صورتی میتونی با ما بیای که سکان قایق رو محکم بچسبی پاهانگ موافقت خودش رو اعلام کرد. بسیار خوب من همین کار میکنم. و سکان قایق رو محکم گرفت. قایق به طرف کوال پاهانگ حرکت کرد و اونا تقریبا تو نصف زمان همیشگی به اونجا رسیدن. این مسئله برای قایق اونا خیلی عجیب بود. هنگامی که قایق توی ساحل راست رودخونه پاهانگ به سکوی کوه کامپونگ رسید، پاهانگ از قایق خواست تا توقف کنند. قایق متوقف شد. پا سکان قایق رو رها کرد و به طرف قایق رونا برگشت و گفت مردان مهرمون لطف کنید و کاری در حق من انجام بدید. اگه کسی به طرف بالای رودخونه رفت خواهش میکنم توی کوالاچینی به اقوام من خبر بده که من آخرین روزهای عمرم رو میگزنونم. اگه اونا میخوان قبل از مرگم به دیدن من بیان هرچه زودتر خودشون رو به اینجا برسونم. کمی جلوتر قایقونا قایقی رو دیدن که میخواست به بالای رودخونه بره یکی از قایقونا پرسید آقا معذرت میخوام میبینم قایق شما به طرف بالای رودخونه میره ممکنه پیغام یه موجود در حال مرگ رو به اقوامش برسونید؟ مرد قایقون قبول کرد ولی متاسفانه همین که به کواله چینی رسید فراموش کرد پیام پاهانگ رو به فامیلش برسونه اونجا هر چی تلاش کرد قایق جلوتر هم نرفت. اونا ساعت ها تلاش کردند ولی بیفایده بود. یه دفعه یکی از قایق اونا گفت هی hey, ما فراموش کردیم تو کوالاچینی پیام را برسونیم. صاحب قایق بلافاصله جهت رو به طرف کوالاچینی تغییر داد و با صدای بلند طوری که همه موجودات اون دوروبر بر گفت پیغامی براتون دارن سری پاهانگ در حال مرگه. اگر اقوام اون میخوان قبل از مرگشون رو ببینن باید فوری به طرف پایین رودخونه به سکوی کو نزدیک کوال پاهانگ برن. قایقون بعد از اعلام پیغام شروع به حرکت کرد و قایقش به راحتی به پیش رفت. طولی نکشید که صدها سسمار بزرگ و کوچیک از سنگی از چینی بیرون اومدند و به سوی پایین رودخونه رفتند، جایی که پاهانگ انتظارش میکشید. مردمی که در دو طرف رودخونه پاهان زندگی میکردند صدها سوسمار رو دیدن که راه رو بند آوردند. مثل تنهای درخت شناور توی آب پشت سرهم هم قرار گرفته بودند، به طوری که بعضی از مردم تونستند از سوسمارهای در حال حرکت به عنوان جای پا استفاده کنند و عرض رودخونه رو بگذرونن و از ساحلی به ساحل دیگه برن سری پاهان قبل از مرگش نزد حاکمون پاهانگ رفت. اون گفت آلی جناب خواهش میکنم آخرین خواهش منو برآورده کنید. خواهش میکنم منو به شکل اسلامی به خاک بسپارید. پادشاه گفت بسیار خوب آرزوی تو برآورده میشه. اون به افرادش دستور داد که پاهانگ رو بعد از مرگ در گودالی ماسهی نزدیک سکوه کوه دفت کنم. یاد بود سری هانگ این مقبره موکام تو پانجان نامیده میشه. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی، tme نقط می/ مهران دوستی، T m e h r نشانی وی ما m e h r a n d o u s t نقطه b نقطه c -O -M. مهران دوستی dotblockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی